دو دفعه بره همه ما توفیق منده است ارز کنم که خیلی خوش آمدیم و بعدم قرار شده که راجب نظامی عرض بزنیم این جناب نظامی عرض کنم که یکی از اون تا خداوندگار شعر فارسی که ما چنین اتفاق افتاده است که به ترتیب تاریخ این های از قردوسی، نظامی، مولانا، سعدی و هفت تصادفن ما چهار تا دیگر رو یه یه نگاهی بهشون کدی این یکی فقط مونده که تا ازش بحثی نشه این پنج تا خداوندگار حرفمون رشتهشون و کارشون با کار اون دیگری فرق داره بنابراین اصلا این حرف بی‌معنیه که بگیم فردوسی بزرگتر یا سعدی سعدی بزرگتر یا حافظ حافظ بزرگتر یا مولانا یا اینا بزرگتر یا نظامی این این درست نیست آرن که فردوسی استاد حماسه است و هیچ کس دیگر بدون استثناء احدی در حماسه سرایی به اون نرس. پیش از فردوسی که هیچ بعد از فردوسی هم که کتابی به اون بزرگی مثل شاهنامه به عنوان سرمش جلو همه بود که میتونن نگاه کنن و رموز رو یاد بگیرن و از روی اون کار کنن، پیش کس نرس. نه تنها به حریم فردوسی نزدیک نشد اصلا شاید از اون محله ولی که از اون شعری که فردوسی توش نشسته بود از کنار اون رد نشد گرش آسنامه حسدی هماسه شماری دوست فاصله این دوتا زمین تا آسان این فردوسی به ترتیب زمانی دومی نظامیه نظامی شاعر داستانسراست و کارش داستان پردازیه یعنی در حقیقت چون تقریبا تمام میراث ادبی اون شعره ما نوت درصد میراث فرهنگی اون اصلا شعر به جای رقص، به جای موسیقی به جای نقاشی به جای مجسم سازی اینا و به جای تئاتر، ما به جای همه اینا شعر دید. و شعر باید وظیفه همه اینا رو به عطه میگیره اینه که شما موسیقی رو تو شعر میگیدین وزن شعر فارسی چیزی بسیار هیچیده است که شبیه در دیگر یه دیگری اشاره خوچیکی هم کردم این یه مقدار موسیقی رو در خودش داره صحنه پردازی نه، نه، نه، کشیدن صورت جاندار اهم از حیوان و انسان در اسلام حرام فقط طبیعت بی جون رو میتونم بسیدن به همین دلیل هست هم که کالیچه های ما و کالیه هایم فقط گلو بوتد صورت سازی در کالیچه اینا خیلی کم مال وقتیست که دیگه دل کردن این حرف کار همچنین رقص نمیدونم دیگری این همه شو و شو شاعر رمان و داستان داستان سرایی و داستانگویی هم در اسلام گفتن قصه گفتن کار لقبه کار عوض و به همین دلیل از دوره پیغمبر سنت هست که قصه گویان رو معن میکردن و اینا رو پراکنده میکردن و بیرون میکردن سر جاشون و البته قصه گوه هم توتان نمی در این زمینه روایت هست که شخصی او نام نظر ابن حارس. این نظر با زاده مثل, مثل نصر نظر با سه این موسیقی بوده و آواز خون بود و بازوغ بود و بوی آمده بود ایران و قصه های رستم و سهراب و رستم و رو یاد گرفته بود و بعد آمده بود در مدینه و اونجا به مردم میگفت چی به این حرفای محمد مشمول من چیزای خیلی بهتر دارم قصه های خیلی عالی دارم رستم و سهراب دارم رستم و اسفندی قصه ها رو میگفت به عدی دوره جمع شدن و همین امر هم باعث شده بود که رسول اکرم، دستور رو و خیلی هم روی این نظرت به حالت صورت بدی هم کشته شد برای اینکه در دشمنی و مخالفت هم کوتا ها نمیم حال همه این کارها رو کار داستان پردازی و کار همه اینا رو شعر بوده گرفته حالا موسیقی و نمیدارم نقاش اینا که بمونه ولی شاعر کار داستان نویس و کار نصر هنری رم شاعر به احتیال هم شعر و نصر هم که میگیریم نثر ما به نصفت اولا خیلی کمه دوم اینکه موضوعش بیشتر خود نصر نیست تاریخ مثلا منطق و فلسفه یعنی علمه یه مداری حکمت معنی آین زندگی و این هر سیاست مثلا کتاب کیلو درم نه درسته که قصه داره قصه از ضربون خرس و شاقال و خوزینه و این داره ولی. این قصه فقط یه پوسته است که کشیده‌ش رو مقصد اصلی، مقصد اصلی علوم سیاسی. کلی ذهن قدیم کتاب علوم سیاسی است که در دنیا نوشته. این است که نثر به کار نثر هنری اصلاً نمیومد اگر فکر کنید که گلستان، خب شاهکار هنر نصر در درجه یکم داره، قسطن دوست داره، بازم همون سعدی برای آموختن راه و رسم زندگی چیزی داره. اگه مولانا تو چیزش رسامده خودش میگه میگوید که اگر نگویم من حقیقت بای تو بر بگویم زن بلغت پای تو بر بگویم بر مثال صورتی هم بذارم صورت به ای فتی با این حال اون قصه هایی که میگه که قدم به قدم وامیشه و تضای معانی او رو دان روی مقاصد خودش بازی مقداری حد میزنه دوباره برمی‌گرده سر قصه این ورژنی قصه مقصد اصلی نیست با این احوال شاعر وظیفه همه اینا رو به عهده گرفته و در نتیجه داستان پردازی و داستان سرایی هم به عهده یکی از اینا افتاده اونم نظامی این کارو به بهترین صورت اتفاقا نظامی هم آدمی است که درجه یک تنها خمسه ای بعد از اون که 5 تا کتاب نوشت اسمش شد 5 گنج در شد خمسه. یه یهدید زیادی از جماعتی که فکر میکردن که این تو چون اسمش خمسه است یا چون پنج تا کتاب به این دلیل گرفته دقیقا میمثل که یه آبی ما میشه به نام شمشیری بعد این جنس خوب میده مردم برنج خوب گوشت خوب چهلو خوب میان یه بنده خدای ساده دیگری هم اوور فکر میکنه که این به این دلیل گرفته که اسمش شمشیریه. میاد میذاره دکونشو شمشیری فرد شمشیری نو نمیدونم شمشیری حقیقی و منتظر دکونش بگیره آه این دکون از بابت شمشیر بودن اگه نگرفته از بابات جنس خوب گرفته تو اصلا شمشیر نظر بذار شما میدونم قلمتاراش ولی جنس خوب بده بذار حل و جوزی جنس خوب بده درست میشه اینو نفهمیزنیه نمیفهمیزنیه دی. در همین دلیل هم نظامی وقتی خمسش گرفت عده بسیار زیادی سعی کردن شاید اگه تعداد بکنیم شاید مثلا یه ست تا آدمی باشن که از یکی یا از هر 5 تا کتاب نظامی تقلید و این تقلیده هم درست همون یعنی لیلی مجون دوباره از در گفته خب بابی که بهتر از همه گفته برای در, در خیصه دیگه بده کن خسروشیری رو دوباره از سر گفته میونه همه اینا یک دونه کتاب هست مال امیر خسرو دهلوی خمسه امیر خسرو دهلوی میگویند که خمسه شماره دوه خواب جای خوندن داره البته باز مثلا فرض فرمید که این تقلیده ها آفر نمیتونه درست درگیاد نظامی یادونه پسر داشته اسم پسرش هم محمد بوده نمیدونم پسر دیگه یه هم داشته یا نداشته ولی این پسر خیلی حرف ظاهرا این علتش این است که شاید همین یه پسره باشه. هر صورت این بچه یه وقتی 7 سالش بوده، وقتی خسرو شیرینم این رو ساخته، این 7 سالش. پیش نصیحت میکنه ببین ای 7 سال قرت الالعین چی وقتی لیلی و مجنون میسازه این 14 سالش بوده. دیگه تاخته بزرگ بشه. بعد دوباره اثر نصیحت نامه مفصلی اول لیلی مجنون داره ای 14 سال قرت این بالغ نظر علوم این چه و چه و چه که مقداری شعراش هم در دبستان ما حفظ میکردیم قافل منش این نه وقت بازیز وقت هنر است. تو سر فرازیز یک دسته گل دماغ پر پرور از قربان صدگیه بهتر نمیدونم با با با با. کم گوی و گذیده گوی چون دور تا از دور ترد جهان شود پر لاخ از سخن چود دور توان زد آن خشت بود که پر توان زد چه و چه این نصیحت ما مفصل است که آخرین تغییری هم که در شده، مروم ایرج به پسر خودش، خسرو یا خسرو میرزا، اونم مرد. ساخته که از مال جهانز کنونو دارن پسری به نام خسرو، هرچند سنش 4 هست پیداست طفل ولی بعد رسم شده خمسه سازا یه نصیحت به پسرش کنن. اولا امیر خسرو دهلوی خسرو و شیرین رو کرده شیرین خسرو لیلی مجنون هم کرده مجنون و لیلی مقصر لحصور هم کرده مطلب الانوار هفت پیکرم هم کرده هشت به هشت اسکندر نوار هم کرده آینه اسکندر خب مجنون و لیلی عوضه لیلی مجنون بعد از تصادف روزگار خوشبختانه در خسرو جین اسم بچه نداشتی به صبیب نداشتی در موقع سرودن لیلی و مجنون یعنی مجنون و لیلی امیر خسرو یه پسری داشت امیر خسرو به نام خزره این هفت ماهش شروع میکنه نصیحت به این بعدم میگه که نظامی سالها تورگیش لغیران تمام عمرش مفتن اصارش جوون بوده گفته رو پیر شده بوده گفته و گاهی هفت سال بین هر کدوم از این کتاباش فاصله بوده امیر پسرو که از افتخارشم اینی که من این یه ساله یا دو ساله سرطه این همه بود با این حال عرض کردم باز خمسه شماره دوست بعد یه شاعری گویا مرسوم بوده که خمسه نظامی رو چون مفصل تره. تقریبا دو برابر خمسه امیر پسرو اون برود 4-5 زار بیت مال نظامی گویا مال امیر پسرو در زار بیت بیشتر نیست درست نمیدونه مرد ولی بعد مرسوم بوده که شعر نظامی رو یعنی خمسه نظامی در متن می‌نوشتن خمسه امیر خسرو رو در حاشیه می‌نوشتن و یه شاعری گفته که در حاشیه جای شعر خسرو زان است تا گرد سر شعر نظامی گرده اصلی که از از نظر ارزش شعری تازه اینی که میشه اسم برد اینطوریه و لیلی و مجنونی که تنها لیلی و مجنونی که قابل اسم بردن در برابرون نظامی لیلی و مجنون مکتب برجت نظامی شاعر داستان سراس، مولوی بزرگترین شاعر ارخانیست اتار و صنایی اول صنایی بعد اتار تمام مقاصد صوفیان رو تمام اون چی صوفیان گفته بودن وارد شعر فارسی کرد قبل از اونها شاعرایی که مشرب عرفانی داشتن یه چهار کلمه یه چیزایی می‌گفتن ابو سعید معروف که شعر گفت یا نگفت هرچند یا بعضیان میگن که این شعرها مال ابو سعید نیست دیگران دیگران هر کی ازش نقل میکنن اینا یه چیزایی یه چهار کلمه یه مطلبی از تصوفو گفتن ولی سنائی و عطار اصلا شعر سلوپیانه رو پایه گذاری کرد و در حقیقت شعر به وسیله سنائی و عطار از دربار آمد به خانقا شاعر که آخر چیزیش که نون در نمی آورد پول در نمی آورد از کارش می شارد باید یک کسی داشته باشه کسی تحقوت بکنه زندگی او این است که اول متوجه درباران می شدن و بودن اونجا ستایشی میگفتن، مدتی میگفتن یا اونایشون که تر بودن کتابی میساختن مثل شاهنامه فردوسی ولی خب همین شاهنامه هم برای اینکه که فردوسی بتونه تمثم بتونه این بمونه باید پادشا وقت تقدیم میکرده تا یه چند نسخهی ازش نوشته بشه الا اقل داره خودچیدین همه اصلا امرهای دربارم بدن بینید یه چند نسخهی ازش بمونه تا این بمونه دیگه. بعد اما نوم بخور این راحت بسید راه دیگه که نداشتیم این هست که شاعرها متوجه دربار میدوند ولی دربارها دیگه یواش یواش هم این کار ریشش در میاد هم دربارها آدم ترکمن بیلمزی که اسلام سواد نداشت یعنی علف ب بلد نبود طغرل سلجوری پایگذار سلسله سلجوقی مطلقا بی‌سواد مثلا الف نمبل و وقت که می‌آوردن توقیع بکنه یعنی فرمونا رو در حقیقت امضا کنه امضا بالای فرمون و شاهنشاه امضا می‌کرده این می‌گفتن وقتی می می‌آوردن فرمون رو توقیع بکنه صاحب راء اتو صدور نوشته که توقیع اون چنین بود بر شک چماق یکی مثل عصا که سرش هم پیچ پیچه سر دستش کشیده اونجا بیگه ای توقیرش اینجوری بود برشکت تمایی فیزی میکشید اونجا اینا چه شعری واسهش ببرم بخونم مثلا، بعدم شنیدیم که گفت که یه شاعری اومد بره برای امیر بغالی شعر بخونه دربونه گفت کجی میری؟ گفت بالا شاعرم میخوام برم این معدی ساختم ببرم برای این بابا بخونم این میگه باز این اصلا هر از بهش یک کلمه اصلا بلد نیست. او خب باشه تو حالا بزن بریم دیگه اخرش اینه که چیزی من میره تو قصیدهشو در میره و شروع میکنه به خوندن با صدای قرا و نا. خواننده نشسته بوده چیزی نمیدونه تف. شروع میکنه به اون وزیرشون اون کسی که به شده میگه. این یه ای والا این شاعره یه خب شاعر چیکام کنه؟ شاعر ستایش میکنه میگه شما هم چنین خب شاید که میگه معمولا این ستایش که بخونه چیزی بهش میدن میگه خیلی خب ست دوان بهش میگه کل سویارو رو میارن و فولی بهش میدن و این خوشحال بخیر در میاد بیرون و دربونه میگه که والله من در تمام عمرم امیری شعر شنافتر از و <تصفيق> من کنم که یکی از مداره که خیلی خیلی قابل ملاحظه در ادب فارسی که امیدوارم خودتون بخونید چون کتاب خیلی مختصری هم هست 100 دوست مشتا نیست کتاب چهار مقاله است چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی و نثر خیلی قشنگ زیبایی هم داره قصه های خیلی خیلی دلپذیری هم داره این 4 مقاله که میگه یک مقالهش راجع به شعر یک مقالهش راجع به یعنی شاعری یکی راجع به دبیریه یکی راجب تپه و یکی راجب نجوم و میگه که درباره پادشاه رو از این چهار حرفه گزیری شاعر میخواد برای اینکه به جای دستگاه رادیو تلویزیون امروز کار کنه و ذکر جمیل او رو در آفاق پراکنده کنه دبیر میخواد که کار ارتباط او رو با عمرهای دیگه برقرار بکنه نگاه بداره تبلیغ میخواد که مغازه به سلامت مزارش باشه نوجوام میخواد که ساعت ببینه که وقت میخوام برم تو خیلی عقیده داشتن که ساعت ساعت هست نیست لازم. بعد در هر کدوم از این مقاله های مقدمه ای می‌بینیم که مثلا شاعری چجور علمیه، چجور هنریه. بحثی می‌کنه و که شاعر باید اینجور باشه، باید اینجور باشه، بعد تحصیل اینجور بکنه، شعر اینجوری حفظ بکنه، مناره بکنه، این قبل مسائل مطالعه کنه تا بعدم در حدود 10 تا قصه از سحرای فاروف میاره که قدیم ترین جایی که راجع به زندگی فردوسی اشاره شده در هم چهار مقاله نظامی, نظامی عروضی در سال 550 شاهنامه در سال 400 تموم شده نظامی عروضی حدود 150 سال بعد راجع فردوسی نوشته با این حال قدیم ترین اشاره به زندگی فردوسی تو اینه که البته مقدار زیادی هم معاملات دوشه یعنی حرفای بیخود زاهران که ظاهران مثل این که بچاران در قرخونه میدیشسته هرکی ارچی هر میگفته این بعد می‌ورد تو کتاب خودت مینوشتیم که این زیادی چیز داره راجب فررخی سیستانی داره راجب ازرقی داره راجب دیگران داره یک حقایت هم راجب امیر مویزی داره امیر مویزی امیر و شعرهای دربار سلطان سنجر بود که گفتن از حلب تا پاشقر قلبی سلطان سنگره یعنی از ساحل در جای مدیترانه تا ساحل و جهیون یه یعنی همچین درباری ملک و شاعراش معظمی بود terceiro می mozi می مینیوسه که پدر معظمی شخصی بود به نام عبدالملک برهانی و شاعر دربار سلاجقه بود و همون کسی است که میگویند که پادشاه تیری اندافت حالا به اشتباه یا به غیر اشتباه به اشتباه به او خورد و اجروم شد و بعدم ارداش یه شعری ساخت که منت خدای را که به تیر خدایگان من بنده بیونا نشدم کشته رایگان شعره میسازه ولی بعد باید از هم همون تیرم ولاخره می میره رایگان کشته میشه بعد که وقتی میخواد بمیره معروف هست که میگویند که پسرشو میسپره به دربار سنجر رو من رفتم و فرزنده من آمد خلاف و و را به خدا و به خداوند سکردم و می میرم میگه معزی میگه من ماهانم یه سال دو سال رفتم به اینجا کسی سلام من علیک نگرفت و محل سک به من نذاشت مقدار زید قرض بالا آوردم برای اینکه هر روز باید میمودم دربار و سلام کردم و, و هیچی به هیچیه ملک مختصری هم داشتیم این رب یعنی اینقدر قرض داشتم دیگه اون چیز شده بود و دیگه تصمیم داشتم که برم بگم آقا خرم آن از که دوم نداشت اجازه فرمی منده شم برم به کنگ ذراحت زراعت کنم این چایری بستم نکردیم میگه در این ماجرا که دیگه من خیلی به سختی اوزگاه میششتم کسی اصلا مل به یه مردی بود از بزرگ شدگان دربار قضنوی به نام امیر علی فرامرز میگه این امیر علی فرامرز شعر منو دوست داشت و علاقمند بود و پارتی من بود و یه شبیه رفته بودن برای دیدن ماه میدونید که ماه دیدن خیلی مهم بود برای اینکه که هم حج و هم روزه هر به دیدن ماه بست داره. برای اینکه که شروع کنم به روزه باید ماه ببینم حلال رمضان و برای اینکه روزه هم بشکنن باید ماه برای حج هم باید هلال زلحجه رو تا در روز و بعدش اینکه میرفتن به قول خودشون برای استحلال دیگه رفته بودن و اول کسی که ماه رو دید سنجر بود که کمان گروه یه یعنی تیر کمونی تیرکمونی هم دستش بود انداخ به طرف ماه که دیگران هم ببینن امتداد اون سنگ و اون موره رو برن که ماهو ببینن و میگه امیر علی فرامر گفت که اینجا جای خوبی شعری در این باب بگو شاه اول بار چیز دیده خلال دیده میگه گفتم ای ماه تو عبروان یاری گویی یا نی تو کمان شهریاری گویی نه علی زده از ذره یاری گویی در گوش سپر گوشواری گویی دیگه اینه به سنجر گفتن، سنجر خب دیگه بزرگ شده بود یه خود پارسی بلد بود یعنی از چا... پشت گذشته بود دیگه البرسلان و ملیک شاه اینا پارچایی کرده بودن از های و این دیگه لابوت پارسی بلد گفته بود به و به فا یه عصبش دده بود گفته بود یه چیز دیگه هم بگو این ساخته بود که یه ربایی دیگری ساخته که مراهات نظیر اسم مراهات نظی میگه چون آتش خاطر مرا شاه بدید، از ما خاک مرا برزبر ماه کشید چون آب یکی روبایی از من بشنید، چون بعد یکی مرکب خواستم بخش. بازم سلطان سنجر گفت چخ یاخچیو، بعدم قرار شد که چیز بکنه و گفتن که بله ایشون پسر عبدالوالی که برهانی صبح متطام اومده اینجا هیش که سیاساً نگفته خالد به چند و اینا و اگر اجازه بفرمایید چون معزی دینه و دنیا لقب سنجر بوده و به همین دلیل معزی گذاشته میشه اجازه فرمای که به نام شما تخلصش بشه اسمش خارج معزی باشه سنجر میگه نه امیر معزی بعد میشه امیر معزی نشابوری و بعد پاربارش روی پشتیبانی این بابا این آخرین کسی است که از کار مدیح سرایی و ستایشگری یه نونو چیزی گیرش میاد یه نونو جوجه‌ای گفتند که سه شاعر در سه دولت هشمتها و نعمت‌ها دیدند رودکی در دولت آل سامان انصری در دولت آل سبکتکین و معزی در دولت آل سنج و میون این ستا اونی که از همه در درس پرشیر و قیمه این کارو خرد انصری بود که خاقانی واسه ساخته که شنیدم که از نقره زد ساخت ززور ساخت آلاتخان انصری به ده بی ست بدره و برده یا به یک فتح هندوستان انصری افش ده بید گفتونه تا کیسه دول و ست تا پرده همون وقت با خیل روزی اون نامل رو کرد. نه, نه تامات گفت و نه وضع و نه زو، که حرفی ندانست از آن انصوری به نصر چپردی نزم چپردی نصر... و نصر کنش نبود آقا و مهان انصوری اینا رو خاقانی میگه میگه من به درجات از رو بیترم و وضم خرابه انصوری خیلی یعنی بالا تا... کسی که در تمام تاریخ ادب فارسی از کار ستاهشگری بالاتر این پولا رو گرفته انصوری بوده من نمیدونم این ستاهشگرهای دوره پحلوی و حسد دو دوبوم که اونا این صناعت و حد کمال دارا بودن البته شعر نمیدونم به صورت دیگه شاید بیشتر از انصوری بردن دا... ما که نبودیم خبر نداریم ولی به هم در تاریخ اون رو ثبت کردیم این, این. این کار دیگه تموم شده بود و معزی تازه که جزء کسانی که خیلی نمونه این کارو خورده به پلاکت و به ادبار و زحمت رسیده بود به اینجا بنابراین شعر باید یه پشتیبان دیگری برای خودش جستجو می‌کرد و این پشتیبان دیگر مردم بودن بنابراین شاعر دیگه از دربار اصفه کشی که به خانقا و شعرش رو به جای اینکه شعر درباری و شاهانه باشه و برای سلاتین و وزرها و عمرها و اینا خونده بشه شعری ساخت که برای مردم بخونه، برای فقرها و بخونه. بخونن و همین کارم کردن صنعی و عطار این کار رو پیش بردن و جاده رو و هموار کردن تا مقدمات ظهور مردی مثل مولانا فراهم بشه که در حقیقت واقعاً یک درجه شد عقل بشجی رو تحقید دادید شعرش در, در دقیقه در باب مسائل و بلندی شعر و در پیدا کردن نکته های حکیمانه خاطر مولانای آفتاب فروزانید و با اینکه هیچ در قید الفاظ و اینا نبوده یعنی شعرش ایادای لطزی زیاد داره از نظر معنات مزرگترین زبان آورترین شاعر زبان فارسی این هم مال مولانا سعدی هم که استاد سخن یعنی هیچ آدمی در زبان فارسی ساسیه تر از سعدی نبوده و هیچ کسی فارسی رو زیباتر از سعدی حرف نزده بوده. هیچ کس نه فردوسی نه حافظ نه نظامی ندید او استاد فساحت اصلا زبانش غیر قابل تغییده به زلالی آب روان بسیار ساده و در این حال به زیبا این صورت و حافظ که حافظ که جمع همه اینا، یعنی همه این مشخصات این تا شاعر دیگر رو در خودش جمع کرده در این چارتت مونسدتا قصد و هر جهت این بود که قصه شعر از, از توی چیز در آمد از توی دربار رفت نظامی در دوره بود که هنوز فل جمله کار شر و علاوه او نظامی هم چیز ارفان تمایلات ارفانی داشته و محضان اسرارش به مصنفی آرفانه است ولی در باقی در باقی جهان باز دیده میشه این رگه های تمایلات عرفانی به خصوص در هفت بیکر که خیلی نمیشه ولی چون کارش داستان سرایی بوده و از دنیا هم به کم قانع بوده این است که می نشسته و این منظوم های ها رو می ساخته و امیران محلی امیران رو پیش کشم کرده که نظامی باشم سر و کار داشته در حقیقت آدم قدر قدرتی مثل منبوح انصری یا منبوح امیر معزی نبودن اینا پاترهای چیکی مثلا یکی که از خخواست یکی از پردستون مثلا امثال اینا بودن از اطابکان کوچولو، عمرای قلوس عمرای محلی و حالا من اینجا وارده اون بحثش نمیشه اسمش ابو محمد الیاسف ابن یوسف ابن زکی ابن زکی و ظال یعنی باهوش زکی ابن معید الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن معید اسش تخلص شاعرانش هم نظامی است مادرش هم زنی بوده به نام رئیسه کرد که از اسم بر میاد که آه... کردن بوده میدونیم که زن گرباچه خب نسوی از کنم که این نظامی در همون قسمت های گنجه و افغاز و اینجاها زندگی و تاریخ ادبی اونجه ها خیلی روشن نیست این سینزابن ترکی که است کاملا چیزش حساب شوشنه اینو عطاواکان آوردن در ترکی هم زبان ترکی ترکیه بسیار بسیار شبیه به ترکمن ترک و ترک زبانان آذربایجان یعنی کسانی که ترکی آذری حرف میزنن، برن در ترکیه گرفتاری دارن خیلی برای از ترکمن صحرا کسانی که اینا نش گرفته نمی‌ن ترکم. و این را حتا بکنه بردن. بحث زیادی در این زمینه آقای دوکر زرین کوب در مثلا سرنهش در کتابهی که راجب مولانا نوشته بحث زیاد کرده برانه اینکه مولانا تمام زندگیشو در اونیه و در آسیه سخیر گذن به نحقی که حالا ترکه هم بگن مبلانا شاهر ترکه و هیچ جور هم به ذات نمیدن که بگیم که هیچ اصلا یه مویی از فارسی یه چیزی تنش است. هرچون بابا این شعر ترکیش که پایده <تصفيق> نده و هرحال مبلانا شعر ترکیم اونا همون همون چهار کلمه هی که در مرسه ابتدایش میادهدن بلدن بگیم این هست که در اونجا زندگی میکرده ولی آدمی رو این زبون که طبیعی وزکه میکرده به زبون فارسی میکرده منبر که میرفته به زبون فارسی میرفته به عنوان شیخ صوفیه که توی خانقا میامده به زبان فارسی سخن میگفته ش... مقاصده... مقاصد اصلی عارفانه شو که در حقیقت مولانا رو مولانا کرده همه رو زبون فارسی گفته این نشون اینی که بداخلی دینا رو گوش میکرده و اینا ترک زبون و یونانی زبون و نمیتونم رومی زبون و اینا نبودن در اونجا اتفاقا توکر زرنیکو بحث مفصدی کرده که در اون روزگار در آسیای سقیر چه زبونهایی رایج بوده و بله اونجای جزی از بیزانس بوده دولت روم شرقی بوده بنابراین رومی بوده یونانی خیلی اونجا رواج داشته. لغت یونانی هم زیاده توی دیوان شمس و پیشزای مولانا ترکی کم کم داشته چیز می شده ولی زبون حکومت زبون فارسی بوده زبون آدم های برجسته آدم های با سواد و آدم درس خونده و آدم های فهمیده و طبقاتی که دنبال و حرف های مولانه بوده این همه زبون چون فارسی به و حال اونجا دقتی کرده دکر زنین که اگه علاقمند باشیم بدونید که اون وقت چجوری بوده اونجا میتونید دیگاه کنید در ناحیه اران که حالا اسمی آذربایجان شمالی و آزربایجان شعردی حالا که شعردی در کار آزربایجان بود این اسمش آران بودن میشه هنوزم آران میگن در در در طبیز و رضایی اونجا اون طرف میگن آران در اران بازم ترکی نبودن اونجا هم میدونیم که جماعت زیادی هستن این دست هرمنی بودن توی ترکی هم، ارمانی بوده، کوردی بوده، جز زبان که منده هم در همون دوره مولانه اینجا هم بیداسته هم که تو ارمنستان گورجی هستن که زبون خاصی دارن که زبونشون زبون گرژی بسیار شبیه به زبون, به زبون باسک ها اون جماعت جدایی که در, در مرد فرانسو و اسپانی هستن این باسک زبونشون خیلی خیلی خیلی شبیه زبین گرژی و اینا رد پای تاریخیشون هم زبون سومری است قوم سومر خیلی شبیه هم به چیست خیلی شبیه هم به همین گرژی و به باسک ها و مهمتر اینکه که میدونید که این شب جزیری که الان اسپانیا و پرتغال پوشه بشه میگن شبه جزیره ایبریا یا ایبریا یا ایبری به فرانسه، ایبری به به این هم آیبریا. این اسم اسم مهاجرتی است یعنی اصلا این اسم اسم اون ناحیه قفقاز است اون ناحیه قفقاز بشه میکنن آیبریا یه ادهی از اونجا مهاجرت کردن رفتن اونجا اسم این شد آیبریا قرص این است که اون تیکه قفغاز خیلی جای کثیرالمللی المللی بوده و تیره های مختلف اونجا چیز داشتن ولی در گنج و هم در آذربایجان یعنی زیر رود عرص، جنوب رود عرص زبانی بوده است از, از شعبه های زبان پهلوی که بهشون کندم زبان آذری پهلوی قربی است در حقیقت بازمانده زبان ماد هاست چون ماد اسم جاث، مثل پارس، یادتون هست که می گفتن مادها و پارس ها مادها، ما یه قوم میشنسیم، یعنی اهل اون زمین، اون زمین اسمش مادیم ماد عبارت میده از همیدان، نهاوند، و خلاصه اون قرب ایران و تا حدود مثلا زنجان و این قسمتش بودن ماد که در وی سرامین به صورت به, به اسم کشور ماه ماه همون ماده و زبون باستانی ماد رو که در دوره پیش از حقامنشون بوده ما ازش نمونه در دست ندرد ولی این کردی فعلی که کردی هم باز اسم یه زبان می سود جد داشته باشین اسم یک زنجیره زبانه و کرد محاباد مثلا با کرد سننده زبان همگره نمی فهمند <تصفيق> یه سلسله زبانی که زبانهای کردی بهش میگن و هم این آزری اینا های اون یافته زبان مادی بود و هر حال محروم که اسروی با خیلی مطالبی که تو این رساله های مختصر شاب کرده خیلی سطحیه ولی یه رساله کچی که داره نام آذری یا زبان باستان آذربایجان. و با اونجا یه تیکه هایی رو از کتابه قدیمی از گفته های مردم و جمع کرده و نقل کرده و گفته مردم و به این زبانجه حرف بزن که نوعی پهلاویی این خیلی آور نیست برای اینکه اون وقتی هم به سعدی و حافظ اون به اون خوبی در شیراز میگفتن مردم و شیراز هم اون زبون حرف نمیزدن مردم و شیراز هم به زبونی حرف دیدن کهشون باتن پهلوی گل بول بلز شاخ سر به گل بانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی یعنی چی؟ گل بانگ پهلوی یعنی ترانه و سرود پهلوی نرگان با قافیه سنجند و بزدگوی تا خارج میخورد به غزلهای پهلوی غزلهای پهلوی چیه؟ و بعد نمونه اینا هست تو دیوان آفز یه غزل سه زبانیست یه قسمتش فارسیه، یه قسمتش عربیه، یه قسمتش پهلوی تو سعدی هم هست یه شعری به نام مسلسات داره یه بهت عربی، یه بهت فارسیه، یه بهت پهلوی بناباری این چیز عجیب غریبی نیست بله شخصیل از قردستان دولت دولتشانی کتاب نوشته زمان را مباعثه کرده با دمان عرصتانی گافه ها بتشوز. و من خودم اون خیلی عجیب شبیه قرده ترموه هم اون عشقان کنار کردی زمان کردی و از میتخواست ثابت که برستم از قردستان بوده و اشون از قردستان بوده خیلی شبیه به گافه هاست. بالا این کارا کار علمی متسف نیست بیشتر همون جنبه یه چیز داره که کار میکنه ولی اینا اگر باید داشته باشن اصلا تعجب نیست برای اینکه نه همه یه زنجیره زبان ایرانی هستند دیگه شاید صد تا زبونه که ما بینم زبون ایرانی زبون ایرانی یه رششتهاش فارسیه، یه رشتهاش پلوی پلوی مثل یه زبون پلوی هاا پلوی کلاسیک تازه پلوی ماوی داریم عشقانی داریم، پهلاوی ساسانی داریم و تو هرگ رو این شهرهای پهلاوی عرض می زدن اون که این چقدر هست چه باحت که حتما هست هیچ شکی نیست اما این که اون از بوده یا رستم از کرد سموده رستم اصلا سکاییه مال سیستانه و سکاها مال شرق هستن و تمام عرض کنم که این قصده های شاهنامه قصه‌هایی در که شرق ایران اتفاق افتاده و اگر در این باب اطلاعات نسبتاً نم مفصل، ولی اطلاعات دقیقی میخواد برجو فهمیم به کتاب دکتر در تاریخ ایران قبل از اسلام، اونجا به صورت علمی راجع به بحث ارز آرزو که این به هر حال زبان آذربایجان، زبانی که نظامی در اون روزگارش حرف میزده، این فارسی نبود، منتاز زبان فارسی، مدت‌های مدی بوده که به صورت زبان ادبی در آمده بود. این آقای نوشت و. چون زبون سمنونی هردان چیز سمنونی هردان سمنونی, سمنونی به قدری زبون مشکلیه که اگه یک ساعت دو تا سمنونی بیشن اینجا حرف زنن شما جز اسمای خاص حسن و تقییم با بشه هیچ چی نمی فهمد اصلا هنوزم هست گیلکی همتون مازندرونی همتون اونیکی همتون اونیکی اینا بوده همید که ناصر خسرو هزار درست هزار پیش میگه میگرفتم آزربایجون شاعری آمد میشه من قطران نام شعر فرخی رو مشکلات داشت داره شعر نیکو گفتی که هست دیوان قطران هست واقعا شعرشن فشن میگه شعر خوب میگو ولی فارسی خوب نمیدونست و مشکلات داشت در شعر فرخی از مشکلات از من پرسید و میتونه اون خراسونی بود زبونی بود که حرف میزد زبون مدریش بود قطران مثل این آهای نوه آهای ن سندونی از بعد پارسی رو یاد گرفته حال شهرام میگه ولی ژاپنی که بهش حرف تو شهر خوند تو ژاپنی دیگری هست یا گیلکی هم در... موهنتر آذربایجانیا که زبانی که حرف می زنن ترکی آذری اصلا از یه رشته زبانهای دیگری زبانهای چرشن زبانهای اورال آلتایی این زبانهایی که در نواهی اورال اورال اون دشت کوی که روسیه رو به سی... از سیبری جدا میده. و آلتایی هم این قسمت جنوب مال نواهی همون مغول و این حرف و تمام این جمهوری‌های شوروی سوروی قرقیزستان نمیدونم من نمیدونم ازباکستان و بعد این طرف همون جایی که گفتم اسمش گلستن آزربای جنوب من باقی اینا همه شعبه‌های های ترکیه از آنکاران میتونن برای اینا برنامه رادیویی بفرستن فرق داره ولی ولی میفهمن نه، اما یک کلم فارسی نمیفهمن اهل آذربایجان از مادرش یاد میگیره که به آب بگه سو به نونم بگه چرک بعد میاد مدرسه تو مدرسه درس میخونه از اول ابتدایی بعد میشه شهریار شاعر به اون قفط قره زبونی که زبون مادریش نیست اینا این طور بوده خود نظامی هم هم طور بوده در اون روزگار، در گنج و اون مواهی زبون دیگری حرف میزدن زبون آزدی حرف میزدن و تاریخ رو گفتم تاریخ ادبی اون مواهی هم خیلی روشن نیست اخیرن یکی از پوزلای درجه یک ما آقای دکتر محمد امین ریاهی که بارها راجعش حرف زده شده این اصلا اهل خواهی، مال آزربایجون متستفانه یه مقداری از وقتش رو صرف کار اداری این حرفا کرد مدیر کل نگارش بود، چه بود تا بالاخره تو کابینه بختیار وزیر شد و شانسش بود که تو کابینه او وزیر شد یعنی برای اینکه یه چنم صد روز وزیر بود، بعد بیرونش کردن راحت حال نشته خونه دارید کار میکنم چیز بینیسه می تا کتاب کتاب درجه یک از اون که دیگه کار اداری رو بل کرده نوشته و چون اهل خوی و زبانش زبان مادریش ترکی آذری مربوط به فرهنگ اون ناحیه و تاریخ اون ناحیه و بعض زبان در اون ناهیه و فوزلای اون ناهیه ولی اون ناهیه خیلی شعرهای مهم میداشته یکیش نظامیه یکی دیگهش که آدمیست که اصلا حوش از در آدم میپره وقتی شعرشو میخونه خاقانیه خاقانی شاعر عجیب و غریبیست اصلا واقعا شاعر بی همتاییست خیلی شعرش عجیبه مزامی نشیدش همه، همین شاعر مفلق منم خان معانی مراست ریزخور خان من از شلی و انصوری و منصفان استاد دانندم که در معنی و شیوه تازه نرسم باستان آغردم یک قصیده داره رفته مدینه نائل شده به زیارت مرغت منور حضرت رسول اکشان شعری در مهد حضرت اونجا انشاط کرده ایستاده خونده مردم که دیدن این آدم قلیب جاسنگین حسابیه تحویلش گرفتن و محبت پش کردن و یک کمی مشتی از خاک تربت حضرت پشت بدن این ورشتا بردیم حالا فرض کنید که این شما بودین این وقت بوده. کمال اعتقادم که انشالله همه دایی بودیه خیلیه فکر <متحد> کردیم که گرام با این چیز دنیا دیگه چیزی که اصلا قابل ترمیم به پول نیست و دیگه از اون بهتر چیزی نیست هم دادن بریم شما چقدر میتونستیم داجبه این یه ماشخواد چیز دیگه چقدر میتونست هر کسیم به نست چقدر میشه نبشیم یک قصیده قرار من چند به میخوام میخوایم برای ما سینیه میگه صبحوارم صبح, صبح کافتابی در نهان آوردم آفتابم که از دم عیسی نشان آوردم عیسی از بیت معمور آمده و از خام خوند خورده گوت و زله اخوان را زخان آوردم هین صلاح ای خوش پی پیران ترداغ من که من هر دو قرص گرم و سرد آسمان آورده ام تف زی مکتب برد نان من ز مکتب آمده بهر پیران زافتاب و مهد و نان آورده ام بعد میگه از سفر باز آمده در راه. سیدف کندم، این سیدی پهلو پهلوب، مغان آوردم از نظاره موی را جا میکرموی مرا توتی گویاست که از هندوستان آوردم این همه میگوید چون کبوتر رفته بالا وامده بر پاک خیش بسته ذر طرفه و خط امان آوردم جرعه خوردم از جامعه چی و دوستان را ای در جرعه این همه میگوگم از آوردن باری بپرس تا چه گنج هست از کدامین کارکدان آوردن و یک چیز میگم سیش نبید آخو این یه همچی شاعری تا اینا میگم تک نبودن کسانی بودن این استاد شمال همونجه بوده اول الای گنگ موجیردین بیلغان نمیدونم احسیر دین احسیکتی یه مکتب عظیم شوهرهای درجه یک بودن در اونجا با وجود اینکه که زبانشو بارسی نبوده و اصلا یه مکتب پس مکتب شوهرهای قاضر و یکی از اینا نظامی است البته نظامی اون وقت چند تا خصوصیت داره یکیش این از که چون این زبون یاد گرفته اول جابونی زبونش مشکله کم کم ساده میشه یعنی مشکل ترین کتاب نظام اونه که اول ساخته محسان لحسار که ما حالا در دانشگاه برکلی برای اینکه یه درس سخت بدیم یه فارسی متن سخت برای اگر انتخاب کنیم قرارم محسان لحسار درس بید به گیراجوهی که البته نبید چه بعد هی کم کم زبون ساده میشه آخرین یعنی اسکندرانه ساده ترین از زبان و پخته ترین و زیباترین و هفکرم که قبل از او زبون ساده است خصوصیت دیگر نظامه این است که این خیلی عجیبه در شعرهای همه شعرهای ایران ستایش زیبایی پسرانت دیده میشه به هیچ وجه فکر نکنید که پس هر شاعر که زیبایی پسر ستایش کرده بچه وازه و منحرفه و تایفه اسمال قربونه و شاخدار زمین میزنه فکر ممکنه وضعی باشن ممکن از هست نباشن هیچ این حرف یعنی این ستایش دلیل اون کار نمیشه دلیل این ستایش این است که زیبای زنانه در منظر و مرآ نبوده کسی زیبایی زنها رو نمیدیده که بس ستایش تایش بنابراین تنها شاعرم که خب شیفته زیبایی از ارز کردم حالا میخواد اون کاره باشه، فرق ممی فرق اون مطلب دیگری است این تنها زیبایی که میدیده زیبایی رخصار پسران جوان اینی که حافظ میگه گران شیرین پسر خونم بریزد دلا چون شیر مادر کنه علالهش و فلان که اینو معنون که انگشت پیشیده که همچون اون درست نیست اصلا سنگی نیست تو نظامی دیده نمیشه میدونیم چرا؟ برانه که اون ناهیه در مجاورت کشور روم شرقی نسرانی بوده رفت آمد کفار که به هجاب و یه حرفای اعتقادی نداشتن زیاد بوده زیبایی زنان دیده می‌شده مادر خودش هم بوده و اصلا اشایر و قبائل هیچوقت هجاب نداشتن الانم ندارن، در ایمانم ندارن، هیچوقت نداشتن، حرام ندارن وقتا نداشتن، کرده اصلا هجاب نداشتن مرد و چون میتونن، حالت غیر و فیر این بازی ها نداشتن به باز مثل آدم می بیرون و میدیدن دیگه بعدم هم تمایل جنسی که دورت طبیعی هر کسی جنس مخالفش تمایل داره مردم زیبای زنها رو میدیده و چیز میکرده در نظامی تمام ستایش هایی که از زیبایی شده ستایش از زیبای زنها هیچ وقت ستایش از زیبایی پسرانه نیست و این یکی از خصوصیات خیلی مهمه شعر نظامی ارز کنم که مطالب دیگری هم هست که من یه وقتی یه یه, یه، سخنرانی مفصلی در انجام متخصیم کردم یکی همه نظرم یجا دیگه کردم نوارشون هست که داشته باشن میارم انشاءالله اگه رفتم به, به لسانجیبست و یادم بود میارم که بیش از این دیگه در باره خود نظامی یه حرف نزد اونو اون نوارو دوستان برد پوش کنن. یه مطالب مربوط نظامی اونجا هست و ما دیگه بعدش مفرضیم به کار خودمون که اولش یه مختصری در برای کار نظامی بگیم و بعد هم بریم سر درسی که تحیم کریم از و او حفظیم کرد فیلن میگه امشب آقای جعفلی که چایی به ها نمیده و من یک سوالم داشتم نمیخواستم بساطی فرمایشات تونرکتون رو قطع کنم خاقانی وقتی اون, اون قصیده رو بره اون یک مشت خاک میگه چطور در قصیده ایوان مداین حرفش کاملا عوض میشه میگه هر کس براد از مکه سبحه زگل حمزه تو زان مداین بر سبحه زگل سلمان این چیز نداشته در عین حال که اون هویت ملی رو داشته، در این حال اعتقاد مسلمی هم داشته، با هندوشی ما رو مانع جمع نمی‌دیده. ولی دلیل یعنی اگه میگه هم؟ اگه همه میرن اون کار میکنن تو اون کارو نکن کاری که خودش کرده. اونم گفت برای اینکه اعتقاد داشته، اون کارم کرده و آدمی بوده که می‌خاست بره هر چیز کرده. آدمی بوده که می‌خاست بره حج اجازه روش ندادن رفته قاچاق رفته گرفتن همشش کردن. نه. دیگه دیگه از این بالاتر برای اعتقادش می‌خواهی کنی که اینجا دیگه کلک و اینایی که نیست اعتقاد و بعد حالا بعد میگم انشاءالله این, این داستان خلیفه و این و اعتقاد به خلافت اینا یه خیلقاییت با نوشتاره بعد از من مرگ... که بله اونتا ترگوید سلطان بالای فرمان گوهی گفته بشد اگر پایین پایین پایین نمی کردن نمی نمی بله یکی؟ اون گفتن توقیه و معمولاً بالا بود به دلیل بالا بودن درجه نه، نه، بالا درجه این رس هم جورا مونده بود که شام فرما رو حالا می گفتن توقیه برای که توقیه زمنش دستور هم هستا فقط امضا نیست و اینا یاد می گرفتن اصلاً من چیز من می مزورد. مزورد. یاد می گرفتن که چجور این توبیه رو بنویسن که اندک لفظ بسیار بسیار مهمشون حفظ میکردن نه، اصلا حفظ میکردن اون دستگاه دادن و ترز دستگاه دادن اینا خیلی کار توبیهات گذشته رو همه رو حفظ میکردن اصلا تربیت میشدن برای اینکه مثل کلمه قسار دستگاه دوستن چی؟ توبیه؟ یه یوزار عربی مقدمات عربیات رو بخون. این اصطلاح باب تفیل عربیه. عربی بعداً درس مثلا در از دوره بوده در قبل از اسلام بوده بعد. فقط درمی و از بله. بنده برم خسته نباشین استاد. یک نفس یک ساعت بیشتر فرمایش کردین خسته نباشید. و این آقای ناصر خان پل با محبتی بکنه و یه زنگی بزنه به آقای مرتضی محتز... بنده مقاله ای داشتم. <تصفح> که در حقیقت یه رساله است نه یه مقاله و مقایسه بین هشت بهشت و هفت بیکر است به نام هشت بهشت و هفت بیکر مقاله مفصلی است این در ایران نامین اون سال دوبوم اینا چاپ شده. و شایدم در دو شما الان درست یادم به هر حال اینو حتما ازشون خواهش کنید یا از دوستان دیگری که دارد ایران نارو خواهش کنید ایران اون مقاله رو چی کنید من ایران نارو دارم سال سال سال اولشه اولین سال, سال سال اول که نیست سال, سال دوم دو و سوم از سال سوم بعدا نیست اون دو تا سال. در صورت خودتون گیر یکی هم بنده ای وقتی که دانشجوی دوره دکتری بودم خدا رحمت کنه مرحوم استادمون مرحوم فرزنفر اول سال که آقادن سر برای هر شاگردی یک پیفه رو اصطلاح اینجا یه تکلیف معین فردوندن که بنویسه و تقدیم میکنه ایش البته امتحان اصلیشون شفاهی بود یک ماه هم طول میکشید چهار جلسه چهار تا مطم بود هر مطمه یک ساعت از دانشون امتحان میکردن بعد هفته بعد دوباره یک ساعت دیگه یه دیگه یعنی سر تاس میشوندن این دانشجو رو تا یه نمره پذیرفته مثلا بشه بدن بعد آزه که جرعت نداشت بره از استاد وقت بخواد. گاهی استاد خودشون می‌گفتن که بیا امتحان تو بده، گاهی هم دیگه معلوم بود و هر حال استاد وقتی که می‌خونای که دانشجو و عزه کافی از محضریشون استفاده کرده و رسیده، یعنی وقتی اجازه و وقت میدادند به دانشجو که در حقیقت قبول بشید و اگر کسی روش رو زیاد می‌کرد، یه خود زیادتر از استاد وقت می‌خواست و اینا می‌گفتن که را مطالعه متعالیه ای می‌کن باید جناب استاد می‌گفتن یه قطری دیگر هم طالب عرض یعنی مثلا دو ساله وارد شده. عرض کنم که روز اولی که استادهاش بردن، البته شاگردای دور دکتری رو هم هر می‌شناختن برای اینکه سال آخر لیسانس که سه سال بود، سال سدوم تاریخ ادبیات می‌فرمودن، بنابراین همه شاگردا رو به قیافه و به اسم می‌شناختن و در دور دکتری که شناسایی مجدد لزومی ندارد. ما رفتیم و سندلی ها همه تک تک بود مثل همون هایی که دست دل داری جلوش که می همون جورت تو اتاق نشسته بودن بچه ها و دانشجو زیادی هم نداشت دور دکتری کلاس مثلا بیش از بیشتا بیشتا بیشتا یکی دوتا نبود و تازه این درس استاد بود درس اجباری بود تقییبا همه می آمدن 22 تا شاگرد داشت بسیاری هم نمیمدن، کم نمیمدن، نمیمدن ولی خود خب روز اول همه اومده بودن و از اون تا نشسته بودن، این صندلی ها همی طور نشسته بودن، نشسته بودن، نشسته بودن صفه جلوترین ترین صف, جلو تر صف مثلا اگر باقی 6 ها تا هفته بود، صندلی تک تک رادیف جلو جلوه چهار تا بود برای اینکه اون محبته که استاد میاد و میره پشت کرسی طابوسی میشینه اونجا دیگه صندلی نباشه و استاد راحت بنه چند صندلی بیشتره اون استاد شروع کردن یکی یکی از اون تای تا کلاس شروع کردن ردیف مثلا از اونجا شروع کردن اومدن تا اینجا و بعد از اینا برگشتن اینجوری همینجوری یکی یکی و با اسم و علاته هر کدومم مناسب اخلاق و روحیات و قواه و عز و چیزش تکلیف معیم می‌کنم مثل شیخی بود اونجا گفتن که تفسیر عبال فتو را بنویس. مثلا نه همجور یکی‌کی تهنگ کردن و به بنده فرمودند که لیلی و مجنون نظامی را با مجنون و لیلی امیر خسرو مقاویست کنند چشم یه خانمی بود که امیدونم زنده باشه انشالله ارز کنم که خانم بود که خداوند تبارک تعالی در خیلقتش تفضلی نفرموده بود خانم این بر روی نداشت و نسبتاً سن نیمازش بود و این آخشق جمال استادم بود صافت میاد آهد روبروی استاد درست آخرین سندلی روبروی کرسی استاد اونجا می آخری آخری بعد استادم که خب بالاخره برند سوز زنای خوشگل درجه یک هم سر کلاس بودن مثل همه های آهی مثلا چند تا دیگه که اینا اصلا افسانه بودن در زیبایی و این خانم جلو جلو نشته بود یکی دیگه هم بود که اون هم مرد خدا رحمتش کنه خانم تسلیمی که بهش میگفتن ام المومنین نوستانیم <تصفيق> سری کلاس از کنم که اون سنی از ازشگاهش خیلی از ما بزرگ کرد. اینا می سالها بود می آمدن و بلسه همونجا محوه بیان و بنان و جمال و کمال و استاد این خانم سال اولی بود که همها بود دوری که باید پیپر می گیری مثل ماها. آخر همه خانم تلعت به مقدم و آخرین کسی بود که استاد باید برش تکلیف معلوم می‌تنم بودن بعد گفتن که خانم زرکو بمقدم گفتن جنابستان گفتن تو هم مسیبت نامه‌ی عطا رابنه‌یست روحش شاد خدا رحمت‌برد برحال ایشون ارز کنم که لیلی و مقایسه لیلی و مجنون نظامی با مجنون لیلی همین فخصو رو بنده تکلیف فرمودن بنده همون وقت چیزی نوشتم خدمتشون تقویل کردم آخر سال پس دادم به من و بنده همون رو دادم مجله سخن چاپ کرد چاپ شد چاپ شد در بعضی که تکلیفم تموم شده بود درسم تموم شده مجله سخن چاپ شد و اخیرن یک تجنزه نظر دیگر هم کردم این آقای ابن یوسف آقای برهان اینو چاپ کرد به صورت جزوی من نگاه کردم چند نسخه دارم البته انقدر نیست که به همه نسخه برسه ولی یه چند نسخه دارم میشه تکثیر کرد اونم مقایسه لیلی و مجنون نظامیست و مجنون لیلی امیر خسرو همین یعنی قصه‌ی حضرت خضر بچه‌ی حضرت توش هست و بعضی از مشکلاتم اونجا گوویاه حل شده بر اولین. بر حال اونم من میارم که این نش تو دره کرد و این لیلی و مجنون و مجنون لیلی چیز بشه. یک مقاله دیگر هم دارن که امیدوارم پیدا بکنم مقاله نیست به نام ساویامه مغنی نامه. دارم که دوستانی که با حافظ سر کار دارن همشون میدونم که آخر حافظ ساغی نامه هست بیا ساغیان می که حال آورد کرامت هزاییت کمال آورد به من ده که بس بیده لفت آده هم این هر دو بیهاسه لفت آده واسه مغنی داره مغنی کجای به گل رو به یاد آوران خسروبانی سرود چه چه از کنم که و این معروفه طوری که بسیار کسان بسیار کسان فکر بکنم که ساغی نامه هستن و حقیقت این است که ساغی نامه ای که خیلی گرفت و موجب شد که همه شعرها ساغی نامه بسازن و در نتیجه این که زیادی ساغی نامه ساختن یه مردی به نام عبدالنبی فخر زمانی قذبینی در قرن دهم ده و یازده یعنی اواخر قرن دهم ده و اوایل قرن یازده یه تذکره نوشت به نام تذکره میخانه اسمش خودش میخانه برای اینکه شرح احوال شاعرای ساقینام سرا بود و ساقینامه ها. نظامی یکی از کاراش اسکندرنامه اش که حالا بعد بحث هایم در هر 5 تا اسکندرنامه اش دو قسمت داره. یک قسمت شرفنامه است و یک قسمت اقبالنامه. شرف شرفنامه شرح بسرا این اثر حماسیه نظامی. علاوه قسمت اول یعنی شرفنامه و قسمت دومش سیاسی در حیरत علوم سیاسی نه سیاسی شرفنامه شرح جهانگیری های اسکندر اقبالنامه شرح جهانداری و مملکتداری و هر دوشون در بحر متقاربه یعنی در بحر شاهنامه فردوسی و پوستان سعدی تمام فصلهای های شرفنامه با دو بیت نامه شدند درستم به همین ترتیب پیمال حافظ خوندم که بیت اول، که از حافظ خوندم بیت اول، وصف میه بیت دوم میگه به من بده بیا ساقی آن می که حالاورد، که آمد فضایت کمالاورد به من ده که بس می افتادم و از این هر بی حاصل افتادم یعنی یه بیت وصف مه بیت دوبامش میگه این مه به بده که من چطوری بشم نظامی هم عین همین تمام فصول شرفنامه با دو بیت ساقینامه به همین طبیل که بیا ساقی اون می که چنین چنانه این بیت اول بیت دوم این که به من بده که من چنین چنان بشم اقبال لامش هم تمام فصله دو بیت داره کتاب مغندی، اینه مغنی نامه حافظ، دو بیت دو بیت تا خاج حافظ با اون ذوق بی نظیر که داشت. توجه کرده که این دو بیت ها را اگه جمع بکنن با هم یه منظومهی بسازن، خیلی منظومه درجیگه که خشنگی و همین کارم کرد اینه همون دو بیت نظامی گرفته، یک کاسه کرده، یه ساخی نامه ساخته یه مقنی نام و من هم که نظامی رو میخوندم اول بار که در سال 1327 بود خیلی خوب یادمه سه سال بعدش تازه دانشجوی روی دانش شدم هنوز دانشجو رو نبودم در سال 27 وقتی اسکندرگان رو خوندم فکر کردم که اگر این دو بیت های به ساقی و دو بیت های خطاب رو استخراج کنم و همه رو پشتن هم قرار بدن یه ساقی نام قشنگی میشه مال نظامی و یه مغنی نامه زیبای مال نظام. ولی این فکری که اون وقت به ذهن بنده رسید چاید 20 سال بعد، چاید هم بیشتر مثلا 25 سال بعد صورت عمل به خودش کرد و من برداشتم تمام این بیتای اول شرفنامه و بیتای اول اقبال رو رو خوشتر هم کردم شد ساقی نامه و مغنی نامه نظامی ولی خب این کار مهمی نبود که کسی برداره اون هر میرزایی بیتونه برداره رو نویس کنه به چاپ کنن، این کاری نبود به همین دلیل من هیش فکر نکرده بودم که اینو بردارم در بیارم و چاپ کنم علت این که نکرده بودم اون همین بود که فکرم که این کار ریستا وقت یه پیش آمدی کرد و اون این بود که من قبل از اینکه رساله آمین نیسم وقتی فارغ و تحصیل دور وی رو چاپ کرد در طی چاپ کردن وی که مال میدونید کیه دیگه مال فخرالدین اسعد گرگانی از این فخرالدین اسعد گرگانی همین کتاب وی باقی مونده یه مقدارم شعرهای پراکنده در فرهنگ‌ها این شعرهای پراکنده در فرهنگ‌ها رو که در فرهنگ لغت پرسی اصدی و فرهنگ رشیدی و فرهنگ جهانگیری و نمیدونم اینا میگشتند که شعرهای فخردین و شعره پراکنده فخردین رو پیدا کنم و پیدا کردم و خلصه کار میکردم رو این برخوردم که فخردین عین همین یه بیت خطاب به ساقی داره بیا ساغ آب آتش فروغ که از دل فرد زنگ و از جان وروغ اینه به شاهد لغت بروخ که به معنی زد فروغ بنی قدرت تاریکیز است آورده بودن دیگه به اش هم نداشت همین یه بیتر. تو فرهنگ و دیگه به شاهده لغت آورد <تصفح> یک بیتن خطاب مغنی توی این شعر کنده معلوم شد که کار خطاب به ساقی و مغنی هم که صاحب تذکر میخانم گفته اولین این ساقینامه نظامی ساخته ساقی. و نظامی رو آورده همین که عرض کردم بنده برخوردم که خیر فخرالدین ظاهرا یه مثنوی دیگری داشته در بحر متقاره که فصلاش اش خطاب ساغی و خطاب مغنی بوده دو بیت دو بیت و نظامی از او تغرید کرده مثلا منتها اون مثنوی فخرالدین به کلی از بین رفته و هیچ خبری ازش نیست و کسی نمیدونه و من این بیتی که پیدا کردم فکر کردم که حالا وقتی که یه مقاله ای بنویسم اون تاغینامه نظامی و مغنی نامه نظامی را یک واسه چاپ بکنم و بعدم بگم که نظامی و عنوان مبتکر این کار شناخته شده اما چیزی که بنده پیدا کردم این است که نظامی مبتکر این کار نیست و همونطوری که در خسرو شیرینش مقدار زیادی از بیسورامین تقلید کرده در اسکندرنامه‌ش هم این خطاب ساقی و مغنی رو از فخر دیگه این مقاله رو نوشتم اون ساقی نامه مغنی نامه نظامی رن تو این مقاله که حالا بهانه‌ای بودی کاری بود برای چیزی چیز تازه پیدا شده بود مقاله نوشتم اون ساغینامه مقنن نظام مقنن نامه نظامی رو نوشتم و, مقنی مقنی نامی رو هم و مقاله اصلا باز در مجله سخن چاپ شد تحت عنوان ساغینامه مقنن نامه و تاریخ سرودن ساغینامه از دوره نظامی یعنی از حدود سال 600 یه دفعه رفت به حدود سال 460 یعنی 1050 هجری قمر دوره فارسی اون مقاله رو مگه پیدا کردم میارم چون نه همه در باره مربوطه به نظامی شعر میگه اونم میارم که تکثیر کنم دوستان نمیدونم واسه این مقالاتی که ما نیش میکشیم و دندون میگیریم بعد میاریم اینجا و ناصر پول بیچارهام می میره و چیز بکنه رو پول از جیب خودش میده و بعضیاش هم یه چیزی اگر زیاد شد الان این مقال راجع به حافظ داریم چهار 5 صفحه است میگه آقا این چیزی گفتم آقا خب پولشو میدی دیگه برای هر میخواد بل اخر پول تاخ داد بده دیگه اینکه نمیشه که مثلا خود بنده رفتم 20 تا 20 2000 60 گرام در برگر 30 دلار 31 2 دلار ازم گرفت اینکه این انصاف نیست که کسی بره, بره, بره نظری بده بعد بگیره نازلی بده دوستانم میذارم گوشه تاخ چک <تصفيق> نگاهش نکن این درسته عرس کنم که بهتر ایناست که چیز ما حالا به هر حال نمیدونیم که ما اینایی که میاریم و تکسیر میکنیم و اینجا تقدیم می به دوستان دوستان این زحمت رو خودشون میدن که مقاله رو بخونن یا نه اومیرم که میدن برای اینکه اینجا کی کسی رو پس گردانی که نگردن هر کی اومده به میل خودش اومده و به رضای خاطر و اینم که ما میگیم آقا اینو بخونین اون رو بخونین بازم برای خاطر خودشون ما میگیم شما هم که همه داوطلبانه اومدین برای بنادرش دلیل نداره که نخونن فقط چیز خاصی ممکن که گرفتاری گاهی مجال نده اینو من مثلا خواهش کنم که اگر چیزی میشه. دردمش حتما سعی کن بخونید اگه ارتباط مستقیم با شما نداشته باشه که بر نمیذارم بیارم بدم این مطلب رو خواستم بگم که حالا این سه مقاله رو امیدوارم خانم نازنین بنده یادش بمونه برای اینکه من که حواسم نیست که بعد چی گفتم یادم میره اصلا کلی ایشون خاطرش بمونه که وقتی رو تهیه کنیم حالا 8 8 بیشتر فکر که خود ناصر گیر میره ولی چیز رو احز کنم که مجنون لیلی و لیلی مجنون رو و ساقی نام مقنی نامر رو اونم شاید لازم نباشه من از چیز بیارم میگم شاید از مجل سفندر بیارم ساقی نام مقنی نامرم چیز لیلی و میگم یه دوستی که گویا نوص داره بفرستید شاید اصلا یه تحریبی بده که بتونیم به همه از اون نوصه بدیم که چیز چیزا حالا مریم روی شماره کردن کتابای نظامی گفتم 5 تا کتاب اول همه محسن و اسراره کتاب دهم و شیرینه کتاب سوم لیلی و مجنون کتاب چهارم هفت پیکر یا بهرامنامه، نامه اسمش بحرام نامه هم ممکنی باشه و کتاب پنجم محروف است به اسکندرنامه که عرض کردم دو قسمته و حقیقتاً موضوعش هم دو تا هست یه بخشش هماسس و شهر جنگ و ستیز و کشورگیریه یه بخش دیگه شهر آداب ملکداری و آین معدلته که این شبطی ممکنه و نظامی هم خودش دو تا اسم رو شرف نامه و اقبال لامه. از نظر سبک شعر محسن الاسرال بسیار مشکل نظامی جوون بوده هنوز سبکش پخته نشده بوده و راه حسنه خودش پیده نکرده بوده این شعرش دوشوار اسکندرنامه از همه شعرش پخته تر و زیباتر و عشنگ تره مردم ایرون داستان این رو که قهرمانش اسکندر باشه دوست ندارم به همین دلیلم نظامی هر چقدر این کار استادینشون بده باشه این چون قهرمانش کسی است که نمیتونه قهرمان ملی اینام باشه طرف توجه نبوده تا به دین حد که خوشبختانه یا بدبختانه نمیتونم نظامی رو همش با هم یه جا چاپ میکنن اگه جدا جدا چاپ میکردن اسکندرنامه یک ده هم این چیزم پروشدن و بسیار کسان هستن که بارها لیلی مجنون رو نمیتونم خواست روشیری نینار خوندن اسکندرنامان نمیتونم در حالی که مثلا در هند اصلا این طور نیست. وقتی صدمه اسکندر به هند نرسید، در هند خود پنجاه تا شهر برای اسکندرنامه نظامی نوشته شده. شم میگن استاندرنامه بری و یک شم میگن اسکندرنامه بحری. اون شرفنامه رو میگن اسکندرنامه بحری، حالا خودمونش دادم نیست. به حال این دوتا تا و شهرها و شهر‌های متعدد فارسی نوشته شده. نه به دلیل اینکه از قهرمانش دلخوری برداشت به کنه. اینکه در ایران با اینکه این خیلی سب کشنه از همه کتاب های دیگر نظامی زیباتر و تره و بیتای خیلی درجه یک میگه به هر جو که افکن دمندر خوراست خوراست یعنی آسیای خوردن یعنی تو ده هر یک دون جوی که خوردن به هر جو که افکن دمندر خوراست دوری باز دادن به گوهر شناد یه بیت چی هزار آفرین بر سخن دستری که باز از هر جو بی جوهری در این حد زیبایی حالی مردم این اون اسکندران اون نامو مغانین داره بنابراین شاهکار نظامی منحصر میشه به دوتا کتابش یکی خسروشیدین که بیشتر ورعوم اعتقادن. هست یک خسروشیدین شاهکارشه یکی هم کرد. که بنده بر این اعتقادم که حف بیکر بهترین اثر نیست بر بیت های درجه اول کم نیست خیلی هم زیاده و خیلی صحنه آرائی های زیوه داره منطقه بافت داستان اپده داره اولا خسرو پرویز که عاشق ممکنه باشه در حقیقت عشقی که در خسرو و شیرین هست، عشق و با فرهاد یعنی عاشق راستی، فرهاده به همین دل بخشی باخی و عشق فرهاد و شیرین صافته اصلا به خسرو کاری نبید بعد همه جا خسرو نشون میده پسید دنبال کار سلطنت چمی چند چم بار میره مملکت گروه بذاره پیشه قیصر روم دختر اونو بگیره ورداره بیاره برای اینکه بتونه بیاد به تار تخش برسه بعد چه گرفتاری ها چه فسات ها و بالاخره مملکت در اثر تجمل پرستی و عرض کنم که عیش و عشرت خسرو پرویز بود که چیز در حقیقت عراب اومدن و مصالح برای اینکه قسط توتو آوردود و برای اینکه یه جزئی وضع این پادشا رو بدونید دونیت کافیست که یه نگاهی بکنید به کتاب سعالبی کتاب سعالبی عربی است ولی دو بار ترجمه شده به فارسی تحت عنوان شاهنامه سعالبی شاهنامه سعالبی یک کتابی است قد به همین کتاب, همی کتاب کوچکی است و اونجا راجب پسروفربی است و تجملات دربارش اونجا هست باید تازه از روزی یعنی هم که شیرین با چیز میشه ارتباط بیده میکنه باز هم هیچ جور عرض کنم که حالت عاشقی رو نشون نمیده چون من حالا بحث راجع به خود رو شیرین نمیتونم بکنم جوزیات مطلب رو بررسی نمی کنم. میمونه تا یه وقت خودتون حوصله کنین به خود رو بخونیم. ولی به طور کلی این داستان قدم به قدم سحنه آرایهاش گرفته شده از داستان فرقش اینه که در وی دو دوتا عاشق واقعی هستن یه زن و یه مرد و عشق هم عشق واقعی است و انقدر اینا در کارشون پاکشان هم. که عشقشون اصلا نامشروع عشق برادر شوهر به زن برادرش و حالا داستان بمونه جزیاتش کار ندارن به او اون این مثلاً فرض فرمه که جاش حالا این مشروعیت یعنی قضیه رو شاید بعضی باشن که اصلا باشن. که عق مشکوم چیه غیر مشکوم چیه یا این رو هم یه مرد زنی دوست میدارن بعد هم برسنم از این حرف ممکنه باید این نظر رو داشته باشه. اما اصلا این خطرناک بوده جون زنیکر رو دارد خطر انداخته اینا ما کشونو گرفتن زنه که زیر تازگاه نظیر بوده با گشنش نمیدونم دائم دلغوره، دائم بدبختی، دائم سختی، دائم وحشت، دائم گرفتاری برای هر دو تا دوستی میاد به رامین یعنی عاشق میگه آقا تو که آبروی خانواده هست که برد آبروی برادر تو که جای پدرت بزرگتر رو خیلید و پادشاه هم هست که برد آبروی اون زنکی که بردی سر زبنها انداختش جونت تو دائم در مرز خواهد چرا نمی کنی آخه؟ اگه زن خوشگل تو این دنیا همین یه خانومه دل کن، سر خود تو این زن بزبخت رو به باد نده و رو یه مسافرتی دی کن، یه فکری بکن، بایی بکن بالاخره هوای این از میره بیرون و آسوده میشین هم تو، هم این زن آخه این معنی نداره حالشو نصیحت میکنن و رامین میره چون قصدم داشته واقعا که به این صحنه های خیلی هولنگیز و ناراحت کننده و خطرناک و اسواق رسفایی پایان بده میره او یه جاییه دختر زیبایی رو میبینه به نام گل و در ناهیی به نام گواب نظرش دختران میگیره و بعدم دختران رو میگیره ازدواج میکنه بعدم بعد هم به ویس که خانم شما از بین دوگه بکن ملکی، زن پادچاهی اون اول کشوری کارتون میکن منم اینجا کردم سر سامون رو گیرم اون حول و تکن و گرفتاری رو دیگه ولش هر چه زاری ها میکنه 20 و چه ناراحت یا اون چه چیزی میکنم؟ اینا بمانه رامینم بعض یه مدتی یه مدت کوتاهی احساس میکنه که این خانم جای 20 رو در دل اون بتونه را میافته میاد ول میکنه زن بینه من کار عشق 20 پراس دست براشتن نیست. را میافته میاد، در ناهیه که اوچانه فعلی، هواش سرد، بعد میر... میگه میرسه زمستون به نزدیک قصر ویست و خبر میده اون تو به زنک که رو برش گرفته خوابیده که رامین اومده و بعد میانو خب خوب گله گذاری و زیاد و این بگو، اون بگو، این بگو، اون بگو، این از هم دیگه دیگه اول ویست هرچند من التماس می‌کنم می‌گه غلط کردم آقا شکر خوردم بعد کردم اینا حالا شما راه نمی‌دزن تا بالاخره رامین خواستم چه؟ میره تا رفت 20 میگه اه این چه خاک بود من سر خودم کردم من که رد پولام شده اون بالش اون شروع می‌کنه به التماس کردن اون وقت رامین راه نمی‌دزید بیا 200 دفعه این رفتن این حال روانی خیلی ساده است همین ادامه بده می‌کنه تا بالاخره عاشق آشتی می‌کنن و چی میشه خب این کاملاً طبیعیه بعد این تو سرما بایسده بود تو یخ و برخ و چه و چه؟ بعدم اینا حقیقتاً حالا نظامی برای اینکه اون صحنه ازدواج با گل که بسیار کاملاً اصلاً طبیعی بوده تقلید بکنه میگه یه روزی خسرو فرویز نشسته بوده تو دربارش این پرسه که خیلی ببخشید خانوی خوب کجا پیدی میگن بله در اصفهان یه زنی هست شکل اصفهانی و این کش بکون. آقا از مدائن تام میشه به سرعت راه در اصفهان می بازی. میره و اونجا بعض آراسته میکنه کنه، یه بوده و الباتیاشو میکنه و یکی دو روز یا چند روز نمیدونم برمیگرده. سال بعد دوباره میره. سال بعد هم باز میره. بعد صحنه پیش میاد که بلاخره شکر بهش میگه که آقا تو خلاصه دل معطل بودی من تو الان هیچ مردی دست ندادم. و دوشیزه هستن و کنیزان اون کاره دارن شب که مهمومیات من می زیادی به اون می پیمایم که می خور و وضعی که مست سیاه شد دید. که چشمش جایل نمیدید یک یکی این می بره توی وقت خوابش با سه ساله با شاهنشاه ایران نمی کاری کردید که ها می کنه عمل خود رو چی باشید عواز این که بگی زنی که به تو رو خودمانو کردی خریه سال. کلا سر من گذاشتی با همین اینجا میگه آخ چون تو دختری پس آخون بگیم بیاد بری عوضش بکنی حالا شیلی اونجا این چیزه منتظر حالا این داستان این کسافت زنکی که کارش اون کار بوده و چیز بیاد شاه و بعد هم پوری تا که خانم دست نخورده حالا اون شغل آبرومندی که داشتی نه اونه اون یه نداره هم. خانم دست خانم بیکر واردن میگه 100 سوال سوالی موطاقش چا گربش کردم یعنی دلیلش فقط این است که یه چون بعد میاد سر این صحنه روبرو شدن ویز و رامی تو سرمای زمستون نظامی میگه که وقتونو داره میگذرد نظامی میگه که شیرین آمده بود و خسرو در مداره نبود و کنیزها که به این رشق می‌وردن و فکر کردن که این زنک بیا توجه کامل خسرو انجام جذب رفتن یه جای بسیار گرمی رو پیدا کردن، طلب کردن جای گرم و دلگیر که از اون تفلی شدی در هفته 21 قصرشینی و همین حالا بنده به شما بگم من کهنوشا بودم، شب 2 یعنی اول فروردین کهنوشا سرد، کاملا گیار نوبعد قصرشینی آورده بودم. یعنی قصر انقدر گرم بود، روز اول فروردین خیارش تمام رسیده بود و خوب آوردن، آوردن انقدر گرم و خودش میگه که نظامی خودش میگه بداند هر که آنجا است تازد که هوری را چنان دوزخ نسازد خیلی حالا خسروپرویزم میاد رو برو بشه, بشه میگه آقا برفی میاد اونجا تو بیا با کماشا اصلا شبگیزی که خسروپرویز سوارش بود نقاب نقره بست یعنی برفش تبرو روی شبگیز تو, تو قصرش بعدم هم همون سحنه بیا و بگو برو و بعد عدم تناسا ببینید تمام داستان فرهاد کوکن از روزی که اسمش میاد تو داستان تا روزی که فرهاد کشته میشه تعداد بیت هاش یه هفش دویتی کمتر از فقط این مکالمه بین این خسروبه